بسم الله الرحمن الرحیم فصل بمان و دیونی زمانت دینها خود دو نفر با هم دیگه معامله می زند به شکل دینی جهت اعتماد فروشنده که سمنش رو دریافت نکرده یکی میاد دو زامن میش من زامن این مثلا مال هست بله این با این زبان ساده مثالی رو عرض کردیم و ضمان دیون المستقره فی الذمۃ اذا علم قدروها صحیح است ضمانت دین های مستقره یعنی لازمه دینه های مستقیره در زمه اون دینی رو میگن که لازم شده مثل که شخصی شخصی رو وام بده خب این یک دینه در زمه هست لازمه هست لازمیست نمیتونه فسخش بکنه طرف پولا رو بهش داده رفته مثلا تا چار ماه دیگر این دین مستقر فرزمه هست لازمی هست شخص نمیتونه فسخش بکنه چه زمان زمانت صحیحه؟ ایدعولی مقدرها زمانی که اندازش معلوم باشد باله همینجوری برای چیز مجهول زامن نشه میگه اگرچه که زمانت در شرح میگه اگرچه که زمانت در دیون غیر مستقیر رحم صحیحه مانند سمن کالای فروخته شده قبل از قبضش این یعنی قبل از قبض کالا هنوز مستقره نیست لازمی نیست ولی میتونه زامن باشه ولصاحب الحق مطالبته من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيناه صاحب حق ميتونه مطالبه كني حق شروع أز هر كسي كخاص چه الزامن چه مزمون عنه اونایی که دین برش هستند اونی که دین برش هست مزمون انه اذا کانت ضمن على ما بینا زمانی که زمانت بر اون صفتی باشد که ما بیان کردیم یعنی دین مستقر باشد و قدرش هم معلوم باشد حق میتونه بره از زامن طلبش کنه اون دینو. و میتونه بره از صاحب اصلی، طرف اصلی هم که همون مزمون هست، طلبش بکنه. و ایده غرم ما و زمان که پرداخت کرد زامن اون حقو به صاحبش یعنی طرف طلبکار پیش زامن رفت و زامن هم پرداخت کرد. رجع بماغر... علمضمون رجع عل عنه اذا کاند ضمان و القضاء به اذن رجوع میکنه زامین به خاطر اون چیزی که پرداختش کرده مضمون عنه زمانی که زمانت و پرداخت به اذنش بوده باشند زمانی که زمانت و قضا به ازن مزمون انه بوده باشن زمین میاد پیشش آقا من پول تو رو پرداخت کردم دیگه مال من رو بده و در شرها میارن میگه اگر زمانت فقط با اجازه مزمون انه بود طرف با اجازه اون مدیون به دهکار شده بود و در مورد ادا در مورد قضا چیزی نگفته بودن باز هم طبق قول صحیح زامن میتونه بره پیشش و بگه که آقا من رو بده ولا یسحو دمان المجهولی صحیح نیست زمانت کردن دین مجهول در چی چیزی مجهول باشه؟ در اندازش؟ چقدر باشه؟ در جنسش؟ در صفتش؟ میگه زیر اثبات مال در زمه هست با یک قرارداد و شبیه به بیه لذا مثل بیه همه چیزش معلوم باشه در شرح میگه پس صحیح نیز زمانت دین مجهول؟ بلندی <تصف> که زامن میگه فلان چیز رو به فلان قدر بده و بر است زمانت سمن اون معلوم نباش والاا یه یجب و همچنین این صحیح نیست زمانت آنچه که واجب نشده. پس صحیح نیست زمانت دین مجهول چه مجهول القدر باشه چه مجهول الجنس باشه چه مجهول صفت باشه فرقی نمی کنه و لا مالم یجب و همچنین صحیح نیست زمانت آن چیزی که واجب نشده یعنی مثلا آینده زمانت بشه هر چیزی که واجب شد برزه در آینده من اونو پرداخت می این که هنوز واجب نشده آه مانند این که شخص بیاد بگه من زامن تو هستم اون صد دیناری رو که آینده به فلانی دین بده خب این هنوز واجب نشده آقا بله میگه این صحیح نیست الا در کل مبیع مگر در بحث در کلمبی در کلمبی چیه؟ مانند این که زامن بشه برای مشتری سمن را در کل مبی پس جایز است زامن شدن گرچه که هنوز واجب نشده رخ نداده پس در درک مبی گرچه که هنوز واجب نشده جایزه که زامن بشه درک مبی چی هست من که شخص بیاد زامن بشه برای مشتری سمن رو آقا اگر این معامله به هم خورد به هر دلیل تو رو من زامنم که بهت باز بگرده یا برای بایع زمانت بده که مبیعت رو کالت رو من زامنم که بر بگرده مثلا زمانی که مسئله استحقاق پیش اومد بعد از این که فروشنده رو فروخت افراد در اومدن که این جنس مال ما بوده و ثابت هم شد اینو میگن استحقاق یا ابدار بود یا در هر صورت دریعیبش بود و بازگردانده شد اینجا میتونه باوجود این که هنوز اون مسائل پیش نیومده از قبل زامنشون باشه فصل الكفاله فصل بعدی در رابطه با کفالت هست مرتبط با زمانته كفيل الأول كفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدميا ميقى كفالة با بدن جائزة زماني كبر مكفول به حقي بره إنساني واشه به چه شکل کفیل بیاد ملتزم بکه که مکفول رو به مکفول لهو باز بگردونه شخص بگه آقا من زامنم که فلانی رو برشما احزار کنم پیشتون برسونم اینو میگن کفالت به بدن پس کفالت به بدن اونی هست که کفیل ملتزم بشه مکفول رو به مکفول له حاضر بکنه، برای مکفول له حاضر بکنه. من کفیلم که فلانی رو بیارم نزد تون زمانی که، اذا کان علی المكفول به حق لآدمیه زمانی که بر مکفول بهی حق آدمی باشه مانند قصص من زامنم که اون شخص رو برای شما حاضر کنم این هم جایزه بس که فعالت بدن این حاضر کردن خود شخص این هم جائز هست فصل و فصل بعدی در رابطه با شرکت هست شرکت از نوع عقود جایزه هست عقود جایزه داریم و عقود لازمه. عقود جایزه اون یک شخص میتونه فسخش بکنه. اما لازمه رو دیگه نمیتونه فسخ بکنه. بعد این جایزه از طرفین میتونه باشه این هر دو طرف حق فسخ داشته باشن یا از یک طرف باشه. خلاصه ولی شرکتی خمست و شرایط شراکت شرکت پنج شرط داره یک ان یکونه علانا دن من الدراهم و الدنانیر. شرط اولش که بر نقود باشه از دراهم و دنانیر از درهم و دینار شرط اولش اینه که از نقود باشه از و دی... درهم و دینار اگر چه که مخشوشه باشد البته در شروع میاره این راجت بلد اگر رایج بودن در اون شهر مخشوشه چیه؟ مثلا نقره درهم از جنس نقره درسته مخشوشه اینه که چند درصدش مثلا چیزی دیگه باشه پرزند پنجا درصدش مثلا نقره هست پنجا درصد دیگهش مثل اینو میگن مخشوشه پس شرط اولش اینه که از نقد باشه درهم و دینار البته در کتاب های دیگه میاره که در چیزای مثلی ولو اینکه از عروض باشند مثلی ها باز هم جایز است مثل مثلا اونایی که کلی هستند یا وزنی هستند مثلا مال هر دوتا گندم باشند چون اینا موقعی که با هم قاتی میشن در شرکت اینه که مخلوط باشند دیگه بگونه که قابل تشخیص نباشند. تمایزی تمیزی دیگه درشون نیست دو و این یتفقه فیل جنسی و نو شرط دوم دو اینه که در جنس و با هم متفق باشند جنس مانند تلا به تلا نو مانند این که مال هر دوتا سالم باشند شکسته نباشند پس از نقود درهم و دینار باشند البته گفتیم که چیزای دیگه مثلی رو جایز دونستند دو متفق باشند در جنس و در نوع. مثلا اگر یکی طلا آورده دیگری هم دیگه درهم آورده دیگری هم درهم بیاره اگر یکی نقره آورده دیگری نقره بیاره اگر مال یکی طلا مال اون یکی دیگه هم طلا باشه بله و این یخلط المالین دو مالو کاملا با هم مخلوط کنند قبل از عقد شرکت قبل از قرارداد شرکت اینا رو کاملا با هم مخلوط کنند شرط جهارم وإن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف هار يكي ترفين ترف ديقارو در تصرف إجازب ده حق تصرف داشته باش خريدي فروشي وإن يكون الربح والخسران على قدر المالين سود وزرر باندازة مال باشد مثلا يكي هزار آورده یکی 50000 و سود و ضرر به اندازه این مالشون باشه پس ضرری که شد فرزن اونی که 100000 آورده ضررش دو برابر اونی که 50000 آورده بعله. به اندازه سود که کم هم شد همچنین سودی که کردن اونی که 100000 آورده دو برابر اونی که 50000 آورده سود میبره ولی کل واحد من هما فسخوه فسخوها متشا هر یکی از اون دو طرف میتونن عقد شرکت رو قرارداد شرکت رو فسخ کنن هر وقت خاصن چون قبلا گفتیم از نوع اقود جایزه هستن از نوع اقود لازمه نیستن یعنی شرکت از نوع اقود من طرفین هست من هر دو طرف میتونن فسخش کنن هر وقت خاصن و متا مات احدو هما هرگاه که یکی از این دو طرف فوت کرد دو طرفی که با هم قرارداد شرکت دارند و متا مات وقتی که زندوتا فوت کرد ها در شروع هاوردن او جنه او اغمیه اله یا دیوانه شد یا بیهوش شد بطلت باطل میشه اون شرکت بله